بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق وياقوب سيوهاشت من آياز سورة يوسف شونزاهم من درساز درسوية سورة يوسف وفرموديه الله جل شأنه هو الزبان يوسف كم يقولات واتبعت ملة آبائي إبراهيم و اسحاق و یعقوب چون چه رسول الله صلی الله علیه و سلم یوسف میگه کریم فرزند کریم فرزند کریم فرزند کریم خلیل الله ابراهیم علیه السلام اوبا و اجدادش اینجا یاد میکنه پدرانم ابراهیم ابو و فرزندش اسحاق پدر بزرگ یوسف و پدرش یعقوب پیامبر فرزند پیامبر فرزند پیامبر فرزند پیامبر با این وجود که پدرانش پیامبر بودند با این وجود یوسف علیه السلام از کلمه اتباع و پیروی استفاده می‌کنه نه از کلمه تقلید نگفت تقلید کردم از باباو اجدادم چون اعتقاد یک چیز تقلیدی نیست که بگم مثلا یکی از ما بگه من پدرم رو بر این دین میافتم پس من دینم اینه دین تقلیدی نیست اعتقاد تقلیدی نیست اینکه چون پدرم سنی بود من سنی ام قابل قبول نیست اینکه چون پدرم ایمان به الله داش، ایمان به ملائکه داره. منم ایمان دارم. چون اون ایمان داره من ایمان دارم. یعنی من قبول ندارم دیگه. فقط تقلیده. کورکران است. چشمن بستم، گفته پدرم اللهی هست منم میگم اللهی است. نه اینکه اعتقاد دا داشته باشه واقعا الله وجود داره. نشانه های الله است. آیات الله است، پیامبران الهی هستند؟ نه. این قابل قبول نیست. پیامبر میگه که من پیرو و رهرو و راه یعقوبم. و یعقوم هم همون تو که پیروه اسحاق بوده و اسحاق هم متو ابراهیم پیروی کردن اینها با توجه به اون ادله و براهینی که داشتن با اون وحیی که بر آنها نازل شده که میاد نوع پیرویش در چی بوده از چی پیروی کرده در این دیانت از آبا و اجداد خودش نوع پیرویش چی بوده که نشون میده که تقلید نبوده اون چیزی که پذیرفته با مستند عقلی خودش و دینی خودش را اینجا برای ما ارائه میده یوسف علیه السلام پس این کلمه اول از این آیه آیه سی و هشتم و تبعه تو پیروی کردم از دیانت و ملت ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما کنه لنا ان نشرک بالله من شیخ این لب مطلب دعوت کل پیانبران الهی پیروی شو میخواد بهمون نشون بده ما کنه لنا ان نشرک بالله من شی. هیچ گونه شریکی را برای الله قرار ندیم هر نوع شراکتی هر نوع شرکی من حتی در گناه و معصیت یعنی نه مجرد شرک اکبر شما فکر بکنید فقط بت پرستیه جای انسان تابع هوای نفسش میشه الله میگه این حرام رو انجام نده هوای نفسش میگه نه انجام بده ابلیس و اش میکنه انجام بده اون حرام رو انجام بده اینجا هوای تو رو شریک الله قرار دادی شریک امر الهی الله بهت گفته انجام نده تو داری انجام میدی الله به میگه نماز وقیم مصلح. نمازو ترک میکنی خب اینجا هوای نفست شیطانت بر تو چیره گشته امر ابلیس بر عدم نماز خوندن بر ترک نماز تقدیم کردی خب اینجا شرک درست شرک اکبر نیست که تو را از اسلام و ملت خارج بکنه اگر یک نماز دو نماز باشه البته ولی که تو دوچار معصیت شدی و در اطاعت و فرمون برداری از الله دوچار شرک شدی ساحت خودش و پدران خودش را یوسف علیه السلام منزه میکنه پاک میکنه از هر گونه شرک هر گونه معصیت یعنی یوسف علیه السلام اون تهمتی که بهش زدن که قصد بدی داشته به زن عزیز مصر یوسف مبراست بریست یوسف زناکار نبود یوسف دوز نبود یوسف خطاکار کار نبود یوسف پاک بود از هر گونه گناهی ما پیامبران یعنی ما کانلنا ما پیامبران هیچ گونه شرکی نداشتیم عصمت اونها هست از گناهان کبیره خصوصا و از هر گونه شرکی به الله خب این اصول دعوت کی بود دعوت انبیاء داره دعوتشو میرسونه که شرک حرامه شرک بدترین ظلمه این شرک لظلم العظیم چنانچه لقمان به فرزندش توصیه میکنه شرک بزرگترین ظلم و جنایته ان شرک لظلم عظیم پس اینجا یک قسمت دعوتش رو میرسونه دعوت پدرش و پدر بزرگش و پدر پدر بزرگش ابراهیم دعوتشون بر این بوده این دو نفر تعبیر خواب دو تا خواب دیدن یکی خواب انگور دیده یکی هم خواب نان دیده ولی که یوسف علیه السلام فرصت استفاده میکنه درس بهشون میده از اون درس دینی و وحی الهی که الله هدف از آفرینش این بوده در خلقتش الله جل شانه الله را فريده برای اون و ما خلقت الجن والانس الا جن و الله لا فریده مگر برای این برای الله یک تا ذلك من فضل الله علينا و وعلى الناس این فضل الهی بر ما شکرگزار الله باشید بر اینکه شما موحدید یکتاپرستید اگر شما شرکی ندارید اگر شما دورید از گناه این فضل الهی است بر شما نعمت الهی این نعمت نیاز به سپاس داره شما بود پرست نشدید بودا پرست نشدید شما مسیح پرست نشدید شب گذار الله بشید سر نماز میگید الحمدلله رب العالمین از دل باشه این مزیتی هست یوسفش اقرار میکنه عدم شرک ما مزیت فضله اختیار الهی بر ما و علا الناس بر مردم هم همینطور اگر چهار شرک نشن فضل الله برشون بوده چون نجات الهی در توحید و در دوری از شرک این نجاته و این اختیاره و انتخابه این انتخاب و اختیار نیاز به سپاس داره ولیکن اکثر الناس لا یشکرون ولیکن بیشتر مردم سپاسگزار نیستن شکرگزار نیستن ناسپاس قدر الله رو نمیدونن بیشتر مردم روی زمین گناهکارن یا بیگناه گناه ظالمن یا مظلوم یکی بیارید غیبت نکنه یکی بیارید دروغ نگه یکی بیاره نگاه نکنه دختری رو بیارید بعد حجاب نباشه کمن اندکن با حجابان درسته کمن مردونی که دلغ نگن نگاه نا نکنن درسته قلیل ما و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشریکو بندگان و ما یؤمنو اکثرهم بالله بیشتر مردم ایمان به الله ندارن مگر اینکه در اون ایمانشون به الله دوچار شرک میشن عجب چطور ایمان داشته باشن مشرک هم باشن میگه میشه بله. دو تا قسمت این آیه اینجا هم همیتور ولیکن اکثر الناس لایش کن دو تا قسمت یک جنبه ایمان و اعتقاد باور روبی الله علمیه ما علمن قبول داریم مثل بحث آیه قبلی که انتقاد یوسف از برادرانش این بود که ایمان به آخرت نداشتن نه اینکه آخرت رو قبول نداشتن عملشون دلیل بر این بود که اونها نمی ترسند از عاقبت الهی به خاطر همین یوسف گفت انی ترکت مله قوم لا یؤمنون بالله وهم هم کافرون با آخرت کافرن عملشون این میگه یعنی این کار عذابه الهی اصلا در نظر ندارن اینجا هم بحث همینه بحث علمیه اینکه خدا رو قبول داشته باشن همه قبول حتی بودایی هم خدا رو قبول داره هندوسی هم خدا را قبول داره اون کنفوشوسیس چینی هم خدا را قبول داره اونان هم خدا را قبول دارن این خدای واحد رو قبول دارن حالا زیر مجموعش فرشتگان یا بت ها را شریک الله قرار بدن اون به جا ولی به عنوان خالق یک تا یک نفر را قبول دارن یک خالق باری یک مدبر کون قبول داره بخاطر همین الله میگه و ما یؤمنو اکثرهم بالله به اونها ایمان به الله ندارن به عنوان خدای خالق توحید ربوبیت توحید علمی یعنی الله رو یک تا قرار میدن در آفرینشش ایلا و هم مشرکون مگر اینکه در اون توحید دوچار شرک میشن چون در توحید عبادت عمل در اون چیزی که باید الله را یکتا قرار بدن الله را در اون در عمل خودشون ما توحید دو تا تو داریم دیگه یک توحید علمی داریم یک توحید عملی توحید علمی اینکه باور داشته باشیم الله یکتا در آفرینشش این توحید علمیه توحید عملی در عمل خودمون الله را یکتا قرار بدیم اول و آخر بگیم الله لیس الله بكافن عبده الله کافی نیست برای بنده، بل کافیه هر گونه شرکی در عبادت اومد میشه چی؟ شرک در طاعت و عبادت، شرک در عمل پس مردم اینو دارن، اولو دارن توحید علمی الله را باور دارن به عنوان آفریدگار ولی عملشون چی میگه؟ عملشون این میگه که پاشون داره میلغزه یا در گناه میفتن، یا در شرک اکبر و شریک قرار دادن الله در اون عبادت کسی را با الله شریکش میکنن دعا الدعا هو العباد، دعا عبادته به جای که بیان مستقیم از الله بخانن کسی را شفیق قرار میدن یک واسطه را قرار میدن خوصاً حالا میاد در آیه بعدی مسئله تأکید بر این مسئله توحیدی که یوسف علیه السلام داره به اون دو نفری که بهاش در زندانن میگه یا صاحبی سجنی ای دوتا رفیق زندانیم صاحبی سجن دوتا رفیق زندانیش بودن گفت صداشون زد با ای رفقای اارباب متفرقون خیر ام الواحد القهار ارباب خدایان متعدد خوبند مردم های مختلفی داشته باشند هر کسی به دین خودش عیسی به دینش موسی به دینش بگه بعضیا ام الله الواحد القهار یعنی که الله واحد و یکتا باشه و قهار باشه این گفتیم مسئله توحیدی که رابطه به بج... آیه قبلی بدیم مساله توحیدی در دعوت یوسف علیه السلام الله اون کسی که خالق آفریدگاره توحید علمی گفتیم مستحق یک تا پرستی شده که ما او را بپرستیم در عبادتمون یکتا یک تا قرارش بدیم چرا؟ چون الله من صدای تمامی بندگانش را در یک آن میشنوه همه بندگانش را میبینه حی قیومه لا تأخودو سنتون ولنم نه میخوابه نه چرت میزنه صفاتش همش کامله نقصی در صفاتش نیست این نیست که گاهی خسته بشه این نیست که گاهی بخوابه همیشه بیداره سمیعه بصیره اما بندگان هر قدم به شرافت برسن به کمال برسن میمونه که میخوابن چشمی بندن میمیرن اینه کمیتون و هم میتون ای محمد تو میمیری بقیه هم میمیرن کسی که میمیرد مستحق پرستش نیست مستحق صدا زدن نیست کسی که صفاتش کمال قاهر حرفش کن فیکونه کسی نمیتونه غلبهش بکنه قاهره قهر داره. یعنی غالب نه مغلوب چیره میشه کسی نمیتونه برش چیره بشه دست کسی بهش نمیرسه مستحق فقط برسه اما اون کسی که مغلوب مقهور میمیره مقوره صفت نقص داره مستحق صدا زدن نیست اون کسی که بعضی جاها رو میشنوه بعضی جاها رو نمیشنوه مستحق پرسهش نیست اون کسی که بعضی جاها رو میبینه بعضی جاها رو نمیبینه مستحق پرسهش نیست دروسی الله قاهره ام الله الواحد و القهار الله نه قاهره قهار نهایت قهر رو داره ابراهیم علیه السلام که پیروی یوسف از آباش در نظر بگیریم چطور پیروی داشته اینجا با ادله داره میگه اللهی که قهاره کسی نمیتونه خورشیدش رو از مدار خارج بکنه و نه هم ماهش بفرماد بیاد قدرت آفرینشش رو نشون مامد اگر خدایی هست نمیتونه کسی دستوردی بزنه به آفرینش الهی الله قهاره ولی اون بطهایی که ابراهیم شکوند تبری تیشه ای برداشت رفت به جون این بطها قهار بودن قاهر بودن یا مقهور مقهور شدن شکستن خورد شدن از خودشون نتونستن دفاع بکنن کسی که شکسته میشه کسی که حاجزه ناتوان مستحق پرستش نیست این دعوت توحیدی که داره یوسف به کی میده یوسف به اون دو تا رفیق زندانش میده این درسم هم برای ماست تذکر و یادآوری به ماست اگر ما الله را میپرستیم چون عیبی رو در الله ندیدیم چون الله پاک و منزه تسبیحش میگیم سر رکوع سر سجده سبحان ربی العلی و سبحان ربی العظیم میگیم پاک و است الله خلقش بالای هرشه اللهمون بزرگه مخلوقات چیزی نیستند مخلوقات مقهورن الله بخاط می میرادنشون نابودشون میکنه مرگ و زندگیشون به دست الله الله که صفت شنیدن و دیدن در اونها آفریده اون کسی باید صدا زده بشه که اون شنیدن رو آفریده نه اینکه اون کسی که شنیدن درش خلقت شده و آفریده شده هرچی باشد اون مخلوق اون شنیدنش رو کسی دیگر آفریده اون حس شنواییش اون کسی باید پرسیده بشه که صفت کمال داره صفت شنیدنش ذاتی باشه نه اینکه کسی براش درست کرده باشه و آفریده باشه براش این درسی که گفتیم یوسف میده بعدم یک مسئله یک هم مهمه در همین بحث دعوت یوسف علیه السلام یوسف اینجا مظلوم واقع شده زندانی شده بیگناهه دعوت یوسف علیه هم یه دعوت سیاسی نبود هرچند که اینجا حرف من شاید فکر بکنن خیلی حرف سیاسیه حرف ما سیاسی نیست بر علیه حاکمی حکومتی نیست حرف ما دینیه ما پیروی میکنیم از ابراهیم در دعوت ما حرف ابراهیم رو داریم میزنین، حرف سخن ما سیاسی نیست، حرف یوسف هم سیاسی نبود، تحریک نمیکرد مردم را بر علیه حاکمشون. نیومد اینجا بگه من مظلوم واقع شدم، منو نمیدونم تهمت بهم زدن، منو زندان عاجز نالی نیست. تحریک کردن افراد بر علیه فرعون نیست، بر علیه حکومت نیست. یک دعوت سیاسی نیست، یک دعوت توحیدی دعوت توحیدی کاری نداره که بر تو فرعونی حکم بکنه، نمرودی حکم بکنه، یا بخواد سلیمان و داوود باشه، پیغمبری از پیغمبران الهی باشه، فرقی نمی‌کنه حاکمه بر تو کی باشه. دعوتگر نباید نگاه بکنه کی برش حاکمه. دعوتش رو انجام بده، نتیجه کارش رو به الله بسپاره. آلاپ تو چاهش بندازن، بفروشنش، خرید و فروش بشه، تو زندانش بندازن، تر جاور دعوتگره. وظیفه دعوی خودش توصیه به دین الهی و شریعت الهی را به مردم بکنه و برسونه اون دعوتی که الله ازش خواسته. و این چیز دلسوزی که یوسف علیه السلام داره نسبت زندانیان چون نجات و رستگاری و فلاح در چی در توحید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر مدون دون ذلك لمن يشا. آخر عقوبتهم یا بهشت یا جهنم بهشت الله برین بر ما حرام میشه اگر ذره شرک داشته باشیم غم این رو باید داشته باشیم چون الله هیچ وقت شرک را نخواهد بخشید اگر یک ذره باشه شرک اکبر ان الله لا یغفر ان یشرک به لا یغفر بخشی یک ذره شه با می ترسه این دو نفر رو دعوتش هم میده بترسید از اینکه جهنم الله بر شما واجب بگرده و بهشتش حرام بشه با شرک بهشت الله بر شما حرام میشه و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء اگر شرکت اکبر نبود شاید الله برات ببخشه شاید الله ببخش. زیر مشیتش بس غم و غصه پیغمبران الهی چی بود نجات و فلاح و رستگاری مردم در روز آخرت وارد بهش بشن بشد الله بر اونها حرام نشه این دنیا رفتنیه اندکه کل من علیها فان نابود میشه پولش مالش ثروتش اثر دار میره اثر بیپولی میره توی قبل بدون پول میری میخوابوننت با خودت هیچ از این دنیا نمی غم و غصه این دنیا خوردن و اینقدر دنیا را جلوه دادن و بزرگ نمایی کردنش کار درستی نیست. اون چیزی که باید بزرگ بشه در چشم ما، چیه آخرت عاقبت حساب و کتاب این باد بزرگ بشه دنیا نگاه بکنید انسان رو پست میکنه برادران یوسف چقدر پستشون کرد ذلیلشون کرد هر کسی قصه یوسف را میخونه همون یهودش هم بخوام بخونم میگن که بله اینا ظلم کردن یوسف رو در چورا چرا بچه گناه رو در چاه انداختن چی چیز منجر شد که اینها در این ظلم بیفتن عدم عاقبت بینی فکری به آخر عاقبت خودشون نمیزدن که اونجا حساب و کتابی صحنه محجری هم هست یا صاحبه‌ی سجنی ارباب متفرقون خیرون ارباب خدایان مختلف باشن تو برما چی میشه میانمار چی میشه میریزن بر سر مسلمانا رو نا میکشن علتش چیه اون خدایان دروغینی که دارن در مصر خدایان بود هر قوم و قبیله برای خودشون خدایان و بطایی داشتن اعتقاد به خدایی در مصر قوا میکرد در اون زمان فر... فر... فرعون ها بعدن وارد دین مسیحیت شد بعداً بودایی ها از اینا گرفتن اساسش از مثل بود چنانچه ارسو هم میره به مثل از مثل میگیره این اعتقاد سه خدایی خدای واحد رو قبول داشتن حالا زیر مجموعه خدا فرشته ای را قرار میدن یا فرزندی برای خدا همونطور که مسیحی ها این دیانت رو از بود پرستا گرفتن و وارد دینشون کردن اینجا داره گوش زدشون میکنه یاداوریشون میکنه از این اعتقاد شرکی به نظر شما خدایان متعدد باشن خوبه چیز خوبیه هر کسی بخواد حرف خودش رو کرسی بگه این قبیله میخواد با خدای خودش مردم بیام به طرف خدای خودش کعبه دوتا بود خوب بود هر کسی بی هر پیغمبری تو به کعبه من اون بیاد بگن کعبه من خدایان دوتا بودن دیگه. خوب بود نه الله بد بود. این متفرق آدم بشه به جون هم دیگه بیفته به خاطر اعتقادش خصوصا اینجا داره رو میده پس عیب از انخراف از بدی اینه که انسان خدایی برای خودش بسازه که با توجه به این خدا سبب بشه که خدای این با خدای اون متفاوت باشه دست سازه خدای مندرآوردیه وقتی که مندرآوردی باشه تفرق میش میاد پس ما باید تابع چی باشیم تابع واحد و تبعت ملت اباء ابراهیم ما باید پیروی بکنیم تا از تفرق خارج بشیم پس مندرآوردی ها در بیاید اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قاعده کلی الله در قرآن بیان میکنه اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفين عليه ابائنا بهش وقتی میاد طابع وح بشید ببینید نه ما طابع ها با اجداد مونیم پس ما با تابع چی باشیم؟ طابع وح نه طابع اون چیزایی که من در آوردیه از این اون به مون قرآن چی گفته؟ پیغمبر الله چی گفته؟ از الله چی برامون گفته؟ ما باید پیروه این باشیم نه اینکه متفرق باشیم و با هم دیگر به دشمنی بر و به خون هم دیگه تشمیه بشیم و هم رو تخریب بکنیم و بر علی همدیگر صحبت بکنیم و مجالس غیبت و تهمت و دروغ را بندازیم صلی الله علی, علی محمد و محمد